پیز در کاسه زر آب تربناک انداز پیشتر زن که شود کاسه سرخاک انداز آقبت منزل ما وادی خاموشان است حالی آقلغله در گنبد افلاک انداز چشم آلود نظر از رخ جانان دور است و رخ او نظر از آینه پاک انداز به سر سبز تو ای سر که گر خاک شوم ناز از سربین حسایه بر این خاک انداز دل ما را که زمار سر زلف تو بخست از لب خود به شفاخانه تریاک انداز ملک این مزرع دانی که ثباتی ندهد آتشی از جگر جام درم املاک انداز قوصل در عشق زدم که طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز یاربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید دود آهیش در آینه ادراکندا چون گل از نکحت او جام قبا کن حافظ وین قبا در ره آن قامت چالا گندا